الاغم به رادیو فیلم می استشهادی برای خدا رو از این ساعت بس رادیو فیلم استشهادی برای خدا. نویسندگان فیل نامه محسن تنابنده علی امینی کارگردان علیرضا امینی بازیگران جمشید هاشمپور فتی محسن تنابنده شیخ علی محمد احمد مهرانفر، رحمت سروناز مستوفی خانم رحیمی موسیقی، سید بهنام ابتهی محصول سازمان سینمایی صبحان تهیه کننده، سعید حاجی میری عمومی که از این ریل راهن تو این برف و بوران به این زودی قطاری رد نمیشه که حاج آقا این با خیال راحت روی ریل قدم میزنه. اینقدر نرده و حفاظ دور بر ریل کشیده شده که یه دفعه اگه قطاری بیاد و حاج آقا بخواد از ریل بپره بیرون خوبی که تو دره‌های کناری نمیفته. تپه ها و دره‌های رخت، اما حالا همه سفید سفیدن از برف. حتی امامی می حاج هم گم شده تو این همه سفیدی. منتظره. چشاش از بارش تواند برف باز نمیشه حتما مسئله مهمیه که تو این شرایط با دستکشو شال گردن وایساده و چشم دخته به خونه های خشتی که روی کوه کم کم دارن زیر برف دفن میشن پشت بوم یکی حیات خونه بالایی فقط تیرای چراغ برق و درخت های لخت از برف بیرون میمونن تو این سرما چرا دستکشو تو در میاری؟ نگه چی بنویسی؟ برگی دفترشو جیبی خیس میشه. فکر میکنه و با دست چپ شروع میکنه به نوشتن زیر لب کلمه به کلمه زمزمه میکنه بعد از چند کلمه که مینویسه به جوی که ریل قطار به نقطه میرسه نگاهشو میدوزه نگار که صدایی میاد چطور تو این بوران صدایی رو میتونه بشنوه؟ میخواد چی کار کنه؟ رو میذاره روی ساک سفریش که برفش نشسته این چه کاریه؟ سرما میخوری؟ گوششو میذاره روی آهن ریل تا بهتر بشنبه موهای کم پشت و هنای رنگش پر از دونه های برف قطار از جایی میاد که بارش برف قرد شده و فقط کنارهای ریل پر برفید تونل نزدیک و تاریک و تنها آینه کنار اتاق راننده قطار میتونه نور بیرون با حدش بکش میتونده بک. هرچند قطار چشم از سراحشو بلد هر قدرم که تونل و کوه پیچ در پیچ باشن بازم قطار بامران ریل خودش رها نمیکنه کنه سنگای کوهو بچسبه بیا اینم نید دیگه. دیگه چی می قطار از تونل میاد بیرون و نورم مثل همیشه با روی باز ازش استقال اه بازم تونل بعد از اون یکی دیگه اما عمر تاریکی کوتاه. به شرطی که بای با نسی و فقط بریم نه مثل همین خزنده آهنی طولانی که بیمه میتازه تازه به سمتی مقصد براش فقط حکمی نفس تازه کردنه چون هدفش فقط رفتنه. رفتن، رفتن و رفتن به همین خاطر تاریکی براش دلگیر نیست میدونه که تونلا و تاریکیشون فقط برای اینم که کوه و سنگ و سختیشون و رو چلون بیم از حساب نیست که هر قفل بسته را با دستهای روشن تو میتونه مردی با چهره ای به سختی طبیعتی که از پنجره قطار دم به بهش نگاه میکنه با ریشی کم و بیش سفید در حالی که کلاه بالاپوشش پوشش رو روی زرش کشیده منتظر آینه و اون تمام راه هم دمه همه هیچ کدوم نورو حتی منظره ای رو از قلم می گاهی اوقات چراغای جلوی دماغه قطارم کمکش میکنه. این چی؟ آره یه ساکم هست؟ یه ساک برزنتی بزرگ روی پای مرد که اون این سوکو از خودش جدا نمیکنه حتما چیز مهم می دوشه بعد از این همه تاریکی وقتی قطار به نور میرسه که با این همه برف بیشتر و بیشترم شده مرد با اون ساکی برزنتی از قطار پیاده میشه نگفتم قطار بعد از اینکه مرد پیاده شد با یه بو غصش خدافز می کنه مردم یه دستی تکون میده قطار قطار نشده که بمونه اون میره که برسونه نه برسه. اوه اوه اوه چه برفی مرد همینطور که قدم بر میداره اونم به سختی تا زانواش تو برف رو میره خوبه که تو این اون هم قوی بونی و چاشونست هم قد بلندی داره با این حال ساکی برزنتی رو برفا میکشونه پالتوی پالتای بلندش هم حیب این طرف و اون طرف میره الان کنار یه جاده و بالای کوهی ایستاده که تا چشم کار میکنه همه چیز فیده باد به قدر میوزه که حتماً باید کلاهاشو با دستش نگه داره بالاخره تصمیمشو میگیره از کوه پایین میره و ساکشون میکشه روزن فقط اون دور که جاده بدون برف این یه خط سیاه بین این همه سفیدیه یه مردی روی اولاغ نشسته و آروم حرکت میکنه یه چیزی هم میگه چی میگه؟ گوش کنه احالی پدر توچ کوهستان متاسفانه پدر فوت شد فردا ساعت هشت تو پرچد از جلوی مخابرات به سمت قبلستا مرد غریبه با چه سختی از کوپانی حسابی نفسش بریده و این ساکم وبال گردن چه؟ بالاخره پاش به زمین میرس چشمش میفته به یه عالم سنگ که با شکلهای مختلف برخلاف سنگهای کوهای اطراف که کنار هم دراز کشیدن رو زمین بایی سدن کوچیک و بزرگ مرد که چند لحظه خوب سنگها رو بارسی میکنه یه دفعه سمت یکیشون میره میشینه رو برف و شروع میکنه برفایی پای سنگها کنار زدن دوباله چی میگرده خدا؟ همینطور که داره با دستهی بدون دستگشش برفارو کنار زنه متوجه چند میت اون طرف تر میشه که یکی داره زمین رو میکنه و کلی خاک بیرون گیرده مدام داره به این تل خاکه ای اضافه میشه کشون کشون ساکش و زمین میکشه و تا اون تل خاک مرد جوان صورت خونی بیل به دست سرشو بلند <تصفح> شوما کی هستی اینجا چیکار میکنی دونباله چه میکردی قبر بلجهان بی پدرو مادرا صندوق دمازاده رو خالی کردم شما کیش میشی کی مرده نگفتی شما کیش میشی مرد جوون با بیلوش میاد سمت قبری که غریبه بالای اون وایساده و با بیلش برفای روی اونو پس میزنه بعد که روی قبر معلوم میشه بیلشو کنار بدنش نگه میداره و اون یکی دستشو میزنه به کمرش و این نطق میشه خدا رحمت کنه همه اهل قبور یار سلیمان و یار اسکندری چون عجل آیت سراغت زموری کمتر مرد غریبه که چشم از قبر نمی داره آروم آروم روزانواش میشینه و دست می روی با با بعد از رفتن مرد گذاستم. کاسه دست نماده چاپون غریبه سرش رو می‌ذاره رو به هیچ صدایی فقط شونه‌هاش می‌لرزه. حالا مرد جوون که بیل روی شونه‌اشو و کلاغر به دستش جلو میره و مرد غریبه همچنان که ساکش رو برفا می‌کشونه پشت سرش. آقا وقتی چنوسش به امن اومد خیلی از ناراحتن. این خدا بیامرزه که قراره خاکش کنیم. زی همون بهمن مونده. حالا می گره 20 تا سال پشت حالا یمتون بهمنی سابقه ندشه. اونجا بوشن کو. حالا. جوون راه میره با یه بند از همه چیز میگه با میگه. متاسفانه پدر فوت کرد. توجه کنید. متاسفانه از وقتی باباش مرده اینجوری شده. فوت میگه که خودش با سلسله خودشیده که چطوری باباش مرده. از اون وقت دیگه چه نه به مقصد قبرستان توجه کنید. هر کس میره فکر می کنه باباش مرده. زانو مردن فرقی نمیکنه کنه. با اعلان متاسفانه پدر پدر فوت شد احالی کنستم فقط کنید من بچه بودم که یه روز صبح گفتن از اینجا رفته هرسی گشتن این اطراف پیداش نکردن یه چند بار خبر آوردن از از رستاهای اطراف که دیدنش ولی اینجا نهیم دقا پتی اونهی که نفس نباشه همینه برف بارون داغونش کرد اتراح خاص مخارجتش کنن، آ گفتش نه، رضایت شخص واجبه. با باشه، شما بودی، نه نرگز خانم. حالا فکر می‌کنن شما با هم هستی. ولی شما تا شبانه، ها؟ یه کوچه گیرم، افسانه با باری در میشن. کوره راه ها و کچه هایی که هیچ راه صافی نداره. آفتی عوض شد نه؟ حالا جمعیت مرده بشه از جمعیت زنده. حالا تنها جون این روستا منه. واسه خلارد هست. من خود از مشهد اومدم، معمولیاتی. معاملات صعود تو سه سال ولی خوب به هایتی که می ده. مرد غریبه تو چه فکری پاش پیش نمی ره ساکه شو چنان بقل کرده که انگار هیچی رو تو دنیا جزون نداره تو راهی وای میسه و همه چی خوب به خوب بارسی می کنه پشت سرش پایین ده و پایین در حتی بو می کشه تیرک چوبی، ایوارای خشتی و گلی که فرو ریختن تیرک های سقف خونه ای که الان زیر پای اونو میتونه از روشون رد چه از سقفی که همین تیرک فقط ازش موندن و دیگه خونه ای وجود نداره بوی آدم ازاد نمیاد انگار همه جو پر از الوار و خورده چوب و ساقای خشکیده است که به زور خودشون رو سرپا مرد قریبه جلو افتاده و مرد جوون بیل و کلنگ به دوش پشت سرش که به خونه میرسن. حیاتش بی در و پیکره و ازش چند تا پله مونده و چند تا پنجره زنگ زده و در چهار تا. دیوارام که نگو از پای زمین خورده خرد خورد خرد شدن و شروع کردن به فرو ریختن. <تصفيق> خریبه لنگ انگون از یکی از اونا بالا میره و سرک میکشه تو اتاقایی که دیگه توانه به یاد خاطراتش هم نداره. میاد بیرون و چارزانه توی حیبون میشین و سرشو میندازه کلا هم کمک که چشش دیده نشه جبان که تا حالا منتظرش بارسده بود میره سمتش اکشم نکنم روتپونیکا طورت از سمونجا بس سمون از روز اول بتر والا به تنگ دستی از شام و نهار خبری نیست قطو بعتو... قطوست الو سلامون لانه لا. دو ساله با هم عروسی کردیم سما هم با همزه نکردیم دو ساله قصی, قصی بگی عالجو جم بگی خوب من که می دونم اون دو تا هم فکرشون همین بود لا لا الله تو کارجو بل... جان 4 سال مادر اینجا زندگی می کنم بعد اخر شما مطالبهام قهر کردی؟ بعدا یعنی نمیذید دخالت داری میکنید بعد آخه میگه منو گول زدی بعد بچه برم جوون بودم بعد کردم خونه بشدم کار بشدم پول دلم بش چیکارش کنم لا لا الله ما که می کار کنم الو دست می تو آسفان. سلام علیکم میگه آه کردم. کار کردم کارو تسلیت دروغ میگه ها ها قبل کنده نماده است اون بخواد اصلا بله بخوره شما, شما کجایی؟ که تشریف میاری ها آه, آه با امیده خدا با نه تا شما نه این که خاک انجام میشه به امان خدا خدا نگهدار خدا حافظی آقا من زنجیری حرفم رو قبول ندی گفت تو شما برین من باهوش صحبت بکنم دیگه خیالم راحت راحت نه است شما برین من باهوش صحبت بکنم خدا شما رو حفظ کنه در امان خدایا الله عمر خدا, خدا. شیخ محمد که از دست زن خلاص میشه از دور مرد جرمان و فتیر رو میبینه که میان بسنتش علمدار اے فتیر روی تخت چوبی خوابیده و کف پاش از پتو بیرونن شیخ علیم هاید با کمک رحمت پایین تخت نشستن دارن یه پارگی جورا پشمی رو میدوزن این نگو بری چی اومده اینجا حرف نمیزنه لانتاکامو حرف نمیزن از این دیوار شما صداش این دیرده نمیشه فقط سراغه زنشو گیره مرگز همون که تو کل بیابون آباره هست این همون فردی نیست که ما خواستیم خونه شما را کنیم همین که خونش پایین پل بود آه. که بچون گفتی رو زدی شخص واجبه سال پیش زنیش یه گل میشه تو بایدی پویسنش حرف میزره اینم ناراحت میشه از قیزش محصولات مردم داغون میکنه میره درخ سیبای مردم نگانه همه جمعه میمیتنی باید رجیسیت افتاده گفتی جنازه را همون‌چون یادت باشه موقع قصنمه همین دو تا انگوشت وقتی موقع کفن کردن همین دو تا انگوشت می‌بینی نزد شیخ علی موقعی داره برای رحمت تو میده دست که به انگشتایش از صفه فتی می‌ذارم مخاطب باش. بفرش نه فتی. بخابت بخابت رحمت کنار مرده کفن پوش گفته‌های حاجقا رو می‌نویسه و فتی از پنجره بالای در آمریکا. حاجو. حاجو. حاجو شخص غیر از خیر چیزی ندیدین. و تو آگاه تری به این شخص نسبت تو ما خب بارلاها بارلاها اگر نیکو بود اگر نیکو نیک. کار بود به نیکو کاریش ب... و اگر گنه کار بود کار بود از گنهش بگذر همه او به اون ره کن آمین یا رب العالمین یارا رب یا متی تیار اخراج فتیمیاد بیرون تو ایبون کنار تابوتی میشینی که آجاقا صبح داش میزد زدام مدل زول میزنی زن کیلو نه بابا سه کیلو بره چی میخوایم که پادگانه خزه بدی نه یا آه پنجا کیلو بره با یه ده کیلو روغن گوشت پنجاه کیلو برای پنجاه کیلو برای پنجا چی 20 کیلو کافیه 20 کیلو علیا نه آقا جا اینجا اینجا که چه نفر این آبادی میشه زندگی چل... می کنه تو اینو قزاخور نیست. نیسته آ ها امیر رو میگم دیگه. شیشه اینجا نگاه کن شما فقط هر طور شده شیشه سو اینجا باش. طور من شما بگو. آقا یه بسته زفرون 5 کیلو روغن 20 کیلو برنج. بسته سلام نامه تمام. پشتام اینجا هستش. هستن میکشیم. آره فقط شما راس ساعت 6 اینجا باش. شما صاحب عز... رس ساعت 6 اینجا هستی آه. شما صاحب عزائی. آره قربان خداحافظ یا علی یا علی خدا ببزید گوشینو بهش دفعه گفتم وقتی ما با این مازن اردم حرف زدم میگوشی را دست خودت رحمت, رحمت جان. جان رحمت مثل همیشه تلفن از روی میز برمی و روی بلندی جای اون کنار پنجره میز گفتم نیست, سی نیست. سی نیست باز بنده خدا تو نیست بهش تو میاد باست تلفان زنگزد و رحمت ترید سمتش الو الو آجاقا جان الو محمد صدق خوبی بابا سلامتی بابا الحمدالله اتانی اما شما خوب الو آج خانم سر الو یک لسی ببین آقا فاتی بیگون سرمان خدا بیس باقی شکتم بیا تو سرمان خود رحمت فهمید که دیگه اون اتاق جایی موندن نیست تا آجاقا با علالش اختلفت کن الو سلام زهر جان شما خ <تصفيق> سلامتی عالم دلده محمد ها محمد صادق خب دکتر رفتی؟ چی تو شد؟ دختره <تصفيق> محومیده خدا جنسمون جور شد دیگه زهره ها نه اینجا که دیگه خوشک سرمانه دیگه آه. خوب شد از اینجا رفتی زهره جان تشیف بیایی تو سرده سرمان کنید فیخه نامادم اصرار دان که شما تشیف بیایی تو آی فتی بفهم ما منتظر بفهم فتی اینه این مجسمه رو تخت نشسته دستش رو زهانواشه و به یه نقطه یه رو زمین زده. شیخ علیم آمد پای تخت کنار فتی نشسته رحمتم داره لباس عوض میکنه دان زنی دوماله چی میگردی؟ لنگه جورا ندیدیش؟ چرا؟ کو. از جلوم از چیه داشت میره؟ بابا همه جورا بتو بگی گله هم کنگاشم؟ یه رفتی برا الان بخی شخیه خود گم نکنی خیلیه رحمت خیلی دمقه اخمش باز نمیشه اینگاه به جوراباش هم دوا داره چه خبره با کجا داره میره خودانی آچه تو درست کن تا. همیش سریاسته تو درست کن سب کن سب کن جیمه تو درست کن این چیه این چیه؟ <تصفح> <تصفح> لا لا لا زختری <تصفح> که زن دست بس پلی با میکنه یا دختر اینجایه تو خانه بهتاش کار میکنه پاش کرده توی یه کفش الا بلا امیر رو برمو درست کن <تصفح> ای که این دختر بالاخره حاجقا از نرگیس چیزی نشنیدی بندرون لبایی حاجقا میماسته و, و چشاشو مشغول تصویهشون بالا همونقدر که مردم میگن <تصفح> مردم میخوام برم دنبالشو پیداش کنم الان بعد این همه مده وقتنگه چه ارس خونه ملا شیخ علی محمد جلو جمعیت و جنازه روی دوشه احالی دنباره با چند فاصله فتحی هم دنبار جمعیته رحمت با این قیافه نو تو قبر بایست داده چنون نهاشو شونه زده و مرتب کرده و کتاشالور کلخوریشو پوشیده و پشت سر اون آه پشت سرش محبوب ساده به خاطر همینه که دلت دلش نیست. لال از دنیا نبی ساله بد خط که انا للا و انا علیه راجعون بازگه به سوی خداست خدا یا بارله همه از این شخص غیر خیل چیزی ندیدیم و تو آگاه به این شخص نسبت به ما اگر نیکوکار بود به نیکوکاریش بیفزای و اگر گناهکار بود از گناهش در خداوند متعال فرمودن که اگر چهل نفر مؤمن شهادت بدن که همین شخص متوفا آدم درستی بوده به عزت و جلالش قسم خورده که به حرمت همون شهادت از گناه مرده حتی اگر گناهکارم باشه بگذرد آقا شاهد اول باستگان نزدید حاج آقا کاغذو به تک تک ازادارا می ده و اونا منگشتاشون رو تو استامپ می زنن و روی کاغذ فشار می دهن امضا میکنن امزا می کنن رحمت گایی بر و به محبوبش این نگاهی می دزه. اما اون خوشش نمیاد از نگاه رحمت نگاهشو می دوزه به زمین دختر با حجب هیاییه حاج آقا ها کاغذو می گیره این ظاهارا میشماره و بعد اونو تا میزنه میبوسه به پیشونیش میزاره و میدتش به رحمت اونم کاغذا میبوسه و به پیشونیش میزاره و همه لباشون به فاطه خوندن تکون میخوره خدایتا ما رو نیا ای از این دنیا ما <تصفيق> رحم الله من حالا از علاقش پیاده شده و بلنگوش گوش بود دوششو و هیچ صدایی ازش شنیده نمیشه جز صدای فرورفتن پاهای خودشو هیبونی که افسارش تو دستشه اگار که کارش تموم شده طبیب رفتنشو دنبال می کنه از برف شروع شده و بیان یک سر سفید پوشه البته تو نور اینقدر پیدا نیست فرد و صبح دیدن اما دیدنی تر داخل کلبه ی که رحمت و محبوبش کنار میز نشستن و هر دو به تلفن روی میز زل زلزدن تلفن سالمه؟ بله سالم بله بخته داداشیتو خدا تو این سرما این وقت شب به زحمت انداختنم. نه خواهش میکنم چه زحمت وظیفمون همینه دیگه. مخابراته دیگه. حالا شما کار کار واجب دارین دیگه. میان اینجا میشنن یه ساعتی کاریم ندارم. میان همونجوری میشن مثلا منو شیخ میشن. شما که کار واجب دارن آقایان شهیدین. اون سرمه. ان شاءالله من به خدا. من خواهش میکنم این حرفا چیه؟ ما همینه دیگه. کار دارن با هم صحبت میکنن الان. کار واجب دارن حتما دیگه زنگ میزنن دیگه. بله. آقای اکبر اینا آقای اکبری که؟ بله آقای اکبری میان کسی شما زنگ زده اینجا کار داره کار با داره حتما دیگه بله شانده. شیخ علی محمد و فتیم دارن این نهو بیت بیرون کل بمیدرسن سعده ها با کداشتی هیچ فرقی نکرده حالا اون که دو سال اینجای منو زادت نکردی دیگه آخرای تلفونشی شرمنده به خدا دیگه حریم خصوصی برای قرار شده یه مخابرات اینجا بسازند اگه یه قیال بله سلام علیکم بله حال شما خوبه بله بله بوشت الو <سؤال> سلام مرسی خوبستین مامان. بله مامان دستان برد نکنه یه آقا کاری داشتی من بیرون به زور رحمت از اتاق میاد بیان اما کشت در خودشو به پوشوندن مثلا جوابش مشغول میکنه که ببینید چه خبره گاییم از شیشه بالایی در سرکی میکشه آها خواهش میکنم نه مرسی چه بله یه دفعه مثل الان پاودلشو از دست میگه پرت میشه وسط اتا آها نمیدونم کاره مشغول درست کردن خونشه تیرک کار میذاره خرت و پرتار رو از توی خونه میدازه بیار رحمتم گچ در یه وگانه کوچیکیه که معلوم دوستا رو این برم برد. شیخ علی محمد و چند مقرد دیگه دارن می سندیمی نزار بشنفن مردم آبادی چی داشتن خب شما که نمیدونی حاجی که شاید آتیش نزده اونم آتیش نزده اونم ناید کسان دیگه دیدن که گذاشته زندگی همه فرا چی فرار فرفرفته خب شما جای اون بودی چیکار کار من جای اون بودم فکر بودی؟ من فکر اون فاطیق مشغول جابجا کردن وسایل کهنه است صدای مرد رو روی پشت روبرو روبروی میشنوه و میاد تو ایوون اما بی هیچ حرفی و کاری بر نمیگردونه. من میگم <تصفيق> شیخ من میگم فتی باشه چی برگشته اومده یک صلوات دیگه رد کنید لا شیخ جواب منو بده من میگم باشه چی برگشته بلای جان ای ما درم صلوات ما که شما غیبت مردم نکنه ای دوباره شیخ غیبت نیست من میگم شما که نبودین اینجا ببینید یه سال بیشتر بلای سر زلزله شاون سر مردم آبادی آورده همون جای مردم, مردم آتیش زد رفت همه مردم میدونن اینو حالا گوزشت و گوزشت یک اتفاق افتاده رفته دیگه حالا روز نه اومده به من هفته گوزشتن چه دیر شما خود چه رفتی داره به این بدبطه پیش را داره؟ احمدو هم دیده رفت نیست یک هفته پیش به من آمده حالا این بدبط دیر از آمده این چه رفتی داره؟ این همون آدم تیز سال پیشه کل پنزان نفر فردای قدمیشون داره میشه اینجا چکار میکنی؟ بیا غره تپوش کن؟ خلاب بر سر؟ بره سرمندو مااد یاوردده. یه بره گش رو؟ یه بره؟ شخ داره حافظ می و رحمت داره حافظ رو پر میکنه که بخواب. بالش دی با که میخواد اضافه زیر سرش بزاره شیخ ازش میره. این رو در خسه ذ آبگو تناککناز؟ بیشتر زن که شود کاسه سر خاک انداس اما تو باید منزل ما چه با... خواه میکنی؟ این شب خور خور میکنی؟ یاد ما تک و دو تا ملو اشتباه گرفتم کیونه غایکیم و مشقات کنیدی. ایم بازه؟ لا لا خودت گفته موقع ما قم من گفتم. ایشون نباید هر شب زای بزنه که. ای کار بازی بیش آره. پدر مادرش آره. منی آرقیه. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ. خواهش میکنم اقا آقا جان میتونی یه دقیقه دیگه زنی بزنی شب شما مخیر جاش اینجاست هزار خانم رحیمی از بیرون خونه شیخ گوشی به دستش و رحمتم داره مثلا چند تخته سنگو اینجا به جا میکنه اما گوشش مره. با خانم رحیمیه آره باشه حتما سلام منو برسونیم گفته بودم آها بازمون رو پوشیده با تمام حواسش بخل آقا رحمت آقا رحمت اونجا رو نگاه کن آتیش کجاست نکنه فتی بلای سر خودش رو باشه شیخه لحمت شیخه لحمت شیخه لحمت نه فتی که تو شیخ خوابه. چطور شد بیم؟ آتیش گرفته بیم؟ اونجا آتیش گرفته اوه اوه اوه کجای رمن؟ باور پوله بودو جان، بودو من رو میاد بودو بیشم من دوباره با فیم نماستیم دیره بله خونه فتحیه دور نبود این اتفاق کاری که خودش 20 سال پیش انجام داد رحمت و شیخ سطر به دست آتیشو خاموش میکنن تمام تیرک های چوبی که به هم تکیه داده بودن نیمسوز ش حتی تازه الان بازه بگیر بیا دوباره به خونه نزدیک میشه و هیچ تلاشی برای خاموش کردن آتیش نمیگونه میره تو خونه و میشه. زباید این شب کلوک عجیبیم من طول خط داشتم کار میگردم اون نیسود به من خبر بده که خونه مادرم خود نیست میخونه بیسال پیش سوخت بجار کولا و توفان بحمن شد با این دستای خودم آتیش شمشم چند نفر نجات داد خودش گرفتارا بحمن شد منم خونه و زنیس همه جا رفتم همه این مسیح گشتم چقدر آرزو توی خونه بود چقدر آرزو توی این خونه بود خدا آرزوی پدر شدن مادر شدن خدا آفتی آفتی بوقعی دفن مادرم خیلی چشم انتظارش کشید ولی ازش خبری نشد حرفا و شایه و شد یه روز دو روز سر روز ازش خبری نشد امیمه سیور گشتم میشه ...و در برگشت. من جانش ازم. فیلو و دی فرجینا دوست تکیه سال برگشتم رحمت دیگه تحمل دیدن گریه‌ی مردو نداره برمیگرده تو ایبون تکی میده به دیوار رو زل میزنه به ما شیخ که زل زده به نماز خوندن فتی روی تخت سوخته نشسته و داره آسدیناشو بالا میزن فتی سلام نمازش میمکاره است اگه رحمت کیفه خان رایمی رو چسبونده بسینش من اینجا صبح دستی واتش خاموش بکردی تو برپانه لیس بخونه بیایی درپانه ترمان چطوره بخوشه؟ ارانم برد نیست بیهون شد دیگه ما کسی سرم نبیه رحمت کیفه خان رایمی رو چسبونده آقا فتی آقا فتی آقا فتی جان این شد میدید برد نفس رو کشی خانم آقا فتی این لحظه سکت باشی دوت زیاد خورده یک دو شبن که اینجا حال روز بروز سینل داشت از قبل داشته آقا فتی آقا فتی چششم یه بیشتر از این کاری از دستم بر نمیاد باید به باین اینا رو فعلا بش بدین آرومش میکنه دستی شما در نکنه فقط همین روزی دوتا آرام بخشه ببخشید میگرم باز باید زحمت شما میشه باید زحمتون رو ببخشید خدا حافظ خدا حافظش خدا خدا میگه. شیخ علی محمد قوتی قرصارو گرفته و فقط نگاه شونه کن که کلن دل تو دلش نیست، کنار شیخ پای در میشین قرصه رحمت نگفتین ها نگفتین ما چه بابا رو به قمله الان وقتی حرفایه لا لا لا اهالی کو حسون کنید مجلس خط فردا بعد از زب. از ساعت سه تا هشت شب در ده بالا شیخ رو کاغذ با چاقوی مهر نماز و میتراشه خاکش و خاکش میریزه کنار یه خورده زفرونه نسید خیلی چیزی نمیدید و تو آگاه به اون نسبت به ما. اگر گنه بود از اون در و اگر نیکوکار بود نیکوکاریش بیافزار رحمته که یا ارحمان راهمین بسم الله راهم بسم الله فتی از تو کیفش یه پارچه نخی سفید تا شده این نو در میاره نه... انا شیخ علی محمد از اون زفرون و خاکه مه محجونی درست میکنه و حالا میخواد با قلم و روی پارچه چیزی بنویسه رحمت و فتیم کنار پارچه نشستن و بعد از تمام شدن نوشته هر سه شون رو تو استامپ میزنن و بعدش روی پارچه نه تا ما را نیامور زیدی از این دنیا مبر بسم الله الرحمن الرحیم کل من علیه آفان بسم الله الرحمن بیرون ساختمان دود گرفته و بیدر و پیکری هی قدم رو میره داخل ساختمان شیخ اومده با چند نفر که در حال کار با قراز جاتن حرف میزنه در حال یه آقا جان انسان جایز خطا ها شما همتون صاف صادق این ایچه اشتباهی نمکنیم این بند خدا هم بلاخره مریضه افکره جوابش کردن حاله روز خوشی نداره بناتارم باشه بکنم. بعد از این همه سال تازه به فکر رضایه افتاده اوه با خدا سعادت میخواد. شما دعا کنه قبل از این که اتفاق براتون بیفته خودتون به حساب خودتون برسیم قبل از این رحمه جم کفنه بیار آقا آقا اگه رضایت قلب میداریم امزا کنیم اگه نه که رضایت حق تونه دیگه سختی نکنه خدا برای تو آسان دیگه دیگه آقا شیخ من امزا زدم ولی رضایت زنش خیلی باجه با ما آقا جم اونش دیگه با من رحمه جم ببین دیگران همه که امزا امضا کنم برد. امزا نکن پرداد جواب خدا رو میخواد چی بدیم خیلی نست داشته ب که رو امزا تو افتیارو خوزده داری که گرداری 20 سال از این وضیه گذاشته این مردم برای همه است به اعترام شیخ هم شده رضایت میدن امزار میگیریم نراد نباشه چی شد والا مگن حرفی ندارن نرگز خانون رضایت بدن اینام رضایت بریم آقا جا بریم رمن جا بتم آقا آقای پتی، حسلا خودت نردم کن. اینها نشود، این همه آدم هست. اینو میذاریم از شوغل نه؟ باز حرف فلکی زدی لامه؟ با دش نسخه و فتیل باشه معتقد متقاعد باشه آرکسی که نمیشه. ممیگم نکنی ماشته بامیکان. حتی یک کاری که نمیکنی غر زد نمیگن دیگه؟ متقاعد باشه میگم. من این تلویزیونی که ما بابا بعدی. من این نفهمدی گپ دفهمه. نفهم ما مانی بنمیگه چرا غر زدی؟ مردم ما بعدی میگن. آره گی؟ خوش ما اختراع خودت داری. ما مقتیر خودم دارم در امزای خودم میرم دست شما در نکنه آقا فتی این کفنه بده آجا خوشان بفرمای پس بفرمای به نخرا برادرشه نرگستم اینو خیلی دوست داشت قطعه یه سری سراغی ازش داره آه بیخبرم نیست خود تنه راحت نکن فتی هر تو شده رضایت چه جل میکنی اینشالله ولی آقا فتی مشکل اینجاست که شما 20 سال گذاشتی خواهرش رو رفتی. خب اینا هم دلبستگی داشتن، علاقه داشتن رو هم دیگه تنها همون خواهرش بوده. ولی الان کجاست الان نیست. رحم جان پیاز داغ زیاد نه. نگاه کن آقا فاتی. شما همینجوری تشریف داشته باشه. بله. یک لحظه ما برون تو. رحم جان یک ندایی بده. یک یا بگو. یا الله یا الله یا الله. آقا باقر. یا پشت در خونه این مونده. آقا باغیر. علی زنش خونه خودش رفته انبار زنش چیزی نگفت گفت اگه شوهرش رضایت بده اونم رضایت مرد با همه قدرت پتکشو رو آهن میکوبه و این سه نفر دست پس میدن دست آخه علی مافاتی جنازه داره داره من جون یه دفعه چی داری میگه خب آخه شیخ شما من قبول نمیکنم من رضایت نمیدم بس سلام ببین از این باشه رضایت چیو میدم بابا رضایت چیو میگه میگه بیس سال خوهر منو گذاشته رفته میگه بیس سال خوهر منو گذاشته رفته من چرا رزایت بودم؟ من رزایت نمیدم بچه اول بهت رزایت اونو بگیرید باقیر جان نگاه کن بهش بگوی این شطریه که در هر خونه میخوابه بگو گذاشت کنه که اگه خدای نکرده اتقاقی افتاد من رضایت نمیدم تا رضایتشون رو نگیری من نمیدم کجا هست کجا کجا یه کوه من تو رو منت ما میبگیریم رضایت بده ما میبنزد لا لا سرش پایینه و چشاش تسیم آقا فتی آقا فتی داشته باش دانا نرگز نه اون خانم شاهد اوله شما هم که دیگه بچه اینجایی دیگه رسم و بهتر میدونید شاهد اول که امضا کنه دیگه همه پرش امضا میکنن دوشنبه دیگه یک بار دوشنبه پادگان بعدش هم های آسفالت رحمت کنار یه تخته سیاه که با گچ روش چیزایی نوشته شده واش ساده اینجار داره درس پس شما باید پادمیونی کنی آ بله سه شنبه هم که برنامه ای برای کیج مراسم سومه من جان سه شنبه خطبه عقد داریم آخه داریم سه شنبه اون برای چار شمبه شیخ جان اون برای چهارشنبه شمبه هست, هست. ساعت دو مرسن بخن مرسن ام نه شما بیا برنامه رو نگاه کنه اینجا باش من یا برنامه شما هم نگاه میکنم شما ببینی که من درست میگم یه شما بدونم بنا صد کن صد نگاه کن رحمد جان خب اخیاشم خود من اختیار سان خودم است. شما اینو نوشتید سه‌شنبه کارخانه آسوال در پادگان سه‌شنبه خود خب سه‌شنبه خود به حق نیست که سه‌شنبه اینجا مراسم سوم داریم. یک دقیقه. اصلا شما خودت برنامه‌ریزی کن. خب اینا رو برنامه‌ریزی کن. حل می‌شه شما برنامه‌ریزی کن. همین طور که رحمت و شیخ سر برنامه‌ها دارن گومنگو می‌کنن، سطحی رو به اوجاق آهنی روشن کنار اوتاق که یک کتری لابی روشه دست وزون بذمین. خیر. مرا نکن. به میشه، به رحمته کار بکنه. با رحمت همراه کنه. آقا شیخ برگه ها رو تو کیف بزرگش میذاره و بعد کیف کوچیکی و با لبخند بیرون میاره که عکس دو تا پسر بچه توشن. آقا این محمد باقره، این محمد صادق. محمد باقره 9 ساله، محمد صادق 7 محمد کلاس اولومه. اونم کلاس اول. اینم بچگیه شیخ. آ شیخ، این چه جردن چیزیه شما؟ جردن، جردن، هرانه خیل خواه فاتی بگو شما بخنین بگو, بگو بگو نه بالا بگو بگو بگو. <تصفح> <تصفيق> اوافاتی ما که بودیم امداد بود. کارش که امداد هنوز یه بود پای تیر برق و رحمت از اون رفته بالا این عشق چپ بالا هایی که سر آدم نمیاره. شیخ مکم نگردم. الو. الو نمتصان. سلام چطوری؟ ببخشید خط شد من نمیدونم یه تایی قط شده حسی گشتیم پیدا نکردیم. آخر شما دام خط تلفن گرفتم. آره قربونه. نه خانوم رامین با من هستن الان اینجا جان. خانم هستن اونجا. الو نه جان، هو غچیشا. رحمت الله عرفانس. ای لا یه گل بره با یه دادنشون. اه. گوشی خانایی ما سلام سلام سن، سنو برخانم خوبی چی شده آرون بشه لسه نه بابا نه منوز ده روز دیگه مونده نگران نباش اون دردای روز آخرشه یه خدا گرم نگرش من فردا خودم حتما رو حتما میرسو رفتا و حرکت میکنم تا عصری میرسم باش خدا تموم شد الو الو نبا قربان کاری ندار اینجا فتحی کنار دستزانی نشسته که توی تشت روی خمیر نونا برس نید اولا که رفته بودی باورش نمیشه تمام خط راهن کمیلا رو دمرارت گشت چند دفن چوکانا زخمی پیداش کرده. بلیش میکردی میزد به کوکم عالی گفتن شوهرش بدیم فکرت بیاد بیرون تا فهمید رفت ازش خبر نداری؟ چند سال میشه ازش خبر ندارم میگن اونجایی که زندگی میکنه انقدر سرده که هیچ بنی بشری دور اون نمیاد نمیدونم چه کار میکنه تک و تنها تو کوهستان از کجا میاره بخوره چجوری جوری زنده میمونه خدا میدونه رحمت شیخ بالای دهنه تونلی ایستادن که فاطی روی ریلی که از زیر تونل رد میشه تا از یه پیرمرد روی کفنش امضا میگیره. کاسپار. پیرمرد هم دیگر تو آغوش میاد. پیرمرد فانوس به دست تو تاریکی تونل گم میشه. شیخ علی محمد با کت و شلوار داره یه دفتر بزرگ و ورق میزنه. حتی هم طرف کنار ریل راهن با ساکش ساکت نشسته خانم رحیمی نزدیک شیخ و رحمت وسط ریل وایساده منتظر گاهی هم گوششو رو آهن ریل بخال که اومد. مردی روی چهارچرخه آهنی که به واسط پدالی روی ریل حرکت میکنه نزدیک میشه. راشی آوردی یا یادم؟ خراب بود روش خرما من. خیال راهن ترمز داشته دوستی هرده. از سر درم نکن واری. از که تو کل آقا فریت سر آوری. یاول بدی باشه آوری. بیشی؟ از سر درم نکنم. از روی پوله زیبایی که آب از های متعددش میشه کشیده شده که دور کوههای پر برف می چرخه با می چرخه با انگار هیچ وقت. گی سوار میشه رحمت و شغلی محمد پیدا رو میزنن اینو پدال و رکاب دوچرخ است خیلی با توی کوه بالا و بالا است رضاعت قلبی داری این کفن امضا کن اگه نه که ما بریم رد کارو چه این حرف ها چیه؟ آفتی باید ما رو ببخشه پدر خدا بیامرزم خیلی پشتن نرگز خانوم حرفته آفتی تو رو خدا بابای ما رو حلال کنی اگه نرگز خانوم هم دیدیم از طرف بابای ما ازش حلالی هست من خودم یه تو بار تا اون درشنی رفتم ولی نتونستم پیداش کنم نگه خونش اون طرف است، درسته؟ آشق واقعا که بعد اون پل چوبیه تو اون درشنی یه دو تا چپون میگن خونهش میگن برای ولی واقعا ما ناییدمشون نگاه کن راه باز اون طرف یا نه؟ این خط راه که تموم میشه شما باید همینجور این مسیر رو بریم ولی خیلی ایجاد بده آها رحمت جانون خودکارو برده بیا انگوش میزنیم امزا بود امزا بزنی. بعد از این هم دوباره همشون سبار میشن و باز آقا فتی و خانبراهیمی نشستن رحمان جان ترموزاش درسته؟ شالده که درسته نگم تا میکنم درسته گفتم بیش درستش کرده گفتم بسه هم دفعه نشه یه با رحمان جان گفتی کجا بایستن؟ گفتم بعد از خونه بزرگ بازن مخواستی بگی با دکترش نباشه عب نمو کنم. گفتم همیشه بهش گفتم خواهد و باشه. باش والا زنی با yes. فامیس همون که بالای کوه بگم این طرف هاست. آره بابا همه میشنسانش دو ما این بنده خدا یه روز میره خبر مریضی مادرشو بده برکه میگشه تو بهمن میمونه اسم شوارش چی بود؟ فتحی <تصفح> خلاصه ده روز این بنده خدا تو بهمن میمونه دوتا سروازم نجات میده تو این ده روز بگو چی خورده برف خورده قصف فتحی چی؟ فتحی هم ده روز که این نبوده عالی میگن که این با کی بوده با کی نبوده خلاصه شایعه درست میکنن دیگه فتحی هم برف مردم گوش میده و میزنه میره بعد فهمه در این حرف بوده بیست سال و بیچاره این زمان تذر آقا فتی پا به پای دختر روی ریل راه میره بقیه سوار همون چهارچرخن و آروم پیشون میان تا به سنا این پر آب میشه شبی که میخواستم برم خواستگاری نرگز هوا خیلی خراب سهل پل و بود از نرگستم پیغام فرستدم که که اگه امشب پاژه رو نذاری دیگه به هم نمی رسیم خالا فتی برای خانم رحیمی روی چرخ نمی درستم کنم بدون که به کسی بگم یک چند خند برداشتم و را افتادم گرفتم سر دست زدم به آب وقتی رسیدم اومر خیزی خیز بودم اما اما کلقم خوشی که خوشی که میشم بند رو گرفتم کلقمدم شکستم اما سه روز نتونستم از خونشون بیان بیان آفتادم مریضه مریض شیخ علی محمد رحمت خدا قوت از این پیدال زدن اونم با دوتا دست کنر ریل یکی آدم برفی درست کرده اما چرا شال و کلاش سیاهن چه بامزه یه آچار بزرگ و یه فانوسم به گردن آدم برفی ها ویزونه چند تا سر سرحالم برای این چارتا دست کن رحمت و شیخم جوابشون رو همونطور سرزنده میدن اما فتی از آدم برفی زن خلاصه، ما یه همخدمتی داشتیم این بچه جنوب بود همروز که تعریب نکردم که میخندید خلاصه خانه رو این گوش بگید بیاید روز بیاید شایخ برو پرو دار لا لا برو دارید بشین بشین خانه بلاید بشین تا برو امزاز بود خلاصه بیاید تنال دریا دریا دمدمای ورود به تونل چارچرخه گیر میکنه و مجموعیشن خالش بدن یه پیرمر که از سرماهه این پا اون پا میکنه همراه دختر یکی چادر سفید سرشو و روی رایل نشسته و انتظار جانو مشغوله؟ آره دو صبح من که بیاد سری کار کنه دیگه سربوزی بود؟ سلام سلام جان یا سرور شو خیلی وقت مونده ببین دیگه خیلی وقت مونده زنگ آشی مودکتر اتو ابردی آیا مشغول هاشی؟ تا پدر ما درشی آیا که همراه چارچه می دوی با لباس سرباز برایم چی؟ شاهد شاهد میخوام. یه میرم آشه خودت یا کارش بکن این چهار چرخم شده تخت عروس عروس بران میخونه کنارش داماد سرباز و کنار اون شیخ علی محمد با لباس روحانی و دفتر به دست نشسته آشه ای ها اونجا باشده برای بار دوم میپرسم خانم معصوم حمیدی فرزند ابراهیم آیا بنده وکیلم با شرایط معلوم که قبلا زک شد شما را به عقل و ازدواج دائم آقای مشتبا نیازی فرزند حسین در بیاورم برای بار سوام می پرسم. خانم معصومه همین فرزند ابراهیم آیا بنده وکیلم با شرایط معلوم که قبلا ذک شد، شما را به و ازدواج دائم آقای مشتبا نیازی در بیاورم و کیلم عروس بعد از اینکه قرآ رو میپوسه میگه با اجازه عمون بلهبارک نشان تمام صورتش پر از خنده میشه. اولین نفری که محکم دست میزنه و. آخرین نفر فتحی دستشو برمی کن. بازم رحمت چشم از خانو رایم تو دلش آرزوی این لحظه رو هزار بار میکشه چار رامی را میفته داماد و رحمت اونو حل میدن وقتی راه افتاد رحمت میپره بالا و داماد سرباز پشت سر عروس و عموش برای ما دست کنیده که کنار خان رایمی نشسته زیر نگاهی بهش میانده و میخواد چیزی بگی که این حرفشو نیخواره شیخم هوایین به تاره داره چی تو فکرشونه خدا میدونه اینا های برف بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن پدال زدن خیلی سخت شده هر لحظه که میگذره سفیدی زمین و هوا بیشتر میشه چرخا کندتر میگردن سر و روی این چهار نفر که نگفتنیه گرد برف صورتشونو پوشونده. هرمان هوا داره خراب میشه من که چه شما برسیم و مقصد والا از نفوس بده نیه بچه شده شده بگه کن خط سفید شده شده. دیگه بازوهای رحمت و شیخ و چرخهای چارشخه زورشون به برف نمیرسه که فتحی با یه دست جلوی برف گرفته که تو چشاش نرانو با دست دیگه کمک میکنه به پیدال گردونده یا خدا چارچرق داری بر میگرده جلاش بر فره نمیره دو از سحره گردنه به رده کنی میمونیم آن یا خدا رحمت که می‌بینم خانم رحمی بجوری از ترسیده دستش جلو چه خرخکه و چه شرخین گیری داره هشته. اما چه شرخه دو به خاطر میشه اون بغواییه اصلا احمد باجورد اون شده همه میان بالای سرش شیخ خواشو بالای سر اون گرفته تو خانم رحیمی دست رحمتو ببنده آی آی آی آی آی آقا را کنم، کن، الان آقا اما تکن تکن نخوا آقا قروره میواشتر شکرده میشه آقا کنم، دستان شکرده آقا، آقا، یه گرونه یواشتر خواه تقسیر خودت قبل را افتادن کنم بده اینه یعیه یه نقای مندازه آقا آقا آقا، شیلوشو خالی کنه، آقا آقا، آقا، آقا، بیا شیخال نمت بیا همینی کنی اخورده که من بیا بیا تو زانوهاشون تو میره خیلی خوب خیلی خوب میرشتار بیا مالا سوار چی شد آید برفت جلا و پاک کنم سما ساید سیم برفت جلا پاک کنم شیخال بمن من برفت بیتارم شما حول بدین آقای فتی شما که میتونی حول بدین بریم خورو شما بیا بالا. بیا بالا. بیره بتر دوارتون با رحمتون برفایش رو سخوانه با یه دکیم چهاچو سخو سخو باش تو سخو فکر باید شد قلب من سخو بگذن سخو پاید منزیر شد سخو نمیشه نگرم با رحمتون از این جلو تن نمشه در رحمتون اون جلو یک پانه او دره بیجیر امین جلو یک بافای خرابی یک چی چیزیه برمتون برید طرف بافای خرابه آبادی، نمی‌دانم آموزش چه باید برم. آموزش، آموزش آموزش فن آقا آفت. به سختی راه میرن تا به یه واگن قدیمی کهنه میرسن و پناه میگیرن حالا تو خودتم ناراحت نکو خانم رهنیمی. رحمت جان یک نگاه کن از این بالا ببین. هوا بهتر شده یا نه؟ رحمت سرش از سوراخ بزرگ سقف واگن بیرون میبرد تا وضعیت خفه رو ببینیم. آ، چطور شد؟ نه این هوا حالا حالا خوب نمیشه. خانمی بعد نرسم شما آره نباد ببینم، حالا؟ چاری نه دارم بیا بیا دبی شما نبودن بری آبجیجان بیا شی سر سختی میکنی؟ همینجا خب هوا دویتار شه بعدم برو دیگه. شما دیگه چرا؟ زنی بیشتره رو که نمیتونم تو این سرما تنها ها من ما میگم خودت به کشتن ندی آبجیجان. کم سخت سالشه که من سالش. آغازشه. او اونا که نمیتونستند تو این خلاق بیارنش. داریت خودمون بیاری سونه. خدا استم که ماری زدی. با چه شدی شه؟ توی هوا چه جوری بره؟ چشتشون نمیره دو بچیلوتر نمیشون ببینی میره گوم میشه شیخ چون نمیدنو بالا شیخ مگه یاد نیست دو عفت پیش تی اتفاقی افتاد بهمن مسیر خدرناک کولاک نمیشه بچیل دو میکنه در عکس مینه ایزو دیگه گوم خانم رایمی را شیخ با خانم شیخ شما یه بگم من من کش بیرم یه دقیق سفر خانم رایم درمجان پر شما باش برو اند باموش بگم. شما گوزره داشته باشین. شما به رحمت داره باشین. می من, باش. باش. من میرم من میرم رحمت جان. رحمت نی دوری بخونم رحیمی. سر سختی می کنه دختره بخونم. فتی از لای درز دیوار واگوم میبینه که خانم رحیمی چطور به سختی را می. باید شما در بگیم از ت همه کجا که یه سرم تاک و زمین همه ها که باید خوب ها بایده آقا باید. باید از اینجا بریم بیا خانو گم نکنیم خیلی خوبه با که بلند میکنن نمیدونن بعد کجا بزارن رو زمین انگار دارن رو ابرارا میرن هیچی جو سفیدی نیست خانم رحیمی دو تا قدم پشت سر هم نمیتونه برداره تو هر قدم زانوهاش خم میشن و میاد بیفته که خودشو جمع میکنه بهتر نبود سف میکردیم فرف کولا خیلی شدیده میکرم برگردیم گفتار اگه مگه به ماما نرسام چکشون سرسام میره دستتون درد میکنه اگه شما نبودی الان خون دستان یکت زده بود با چیزم هم. همونم فشتیمون نشدین در یشت هم مقابد چاری نداره فتی تو واگون آتیش رو کرده و کفنشو انداخته روی تیرک خشک میشه شیخم ته واگن دفتر سبتش جلوش باز کرده جوهری دفتر بازو میاره نزدیک آتیش که برگاشو خوش کنه فتی تو فکره و داره چوب خوشک و دستاشو خورد میکنه افتادم که توی خ راهبان بودم. فاصله ایستگاه ما تا ایستگاه بعدی۸ کیلومتر بود. 9 کیلومتر من میرفتم 9 کیلومتر راهبان مقابل می اومد. بط وقتی به هم می رسیدیم یه. Yeah. که از داشتیم که بیشش گفتن <تصفيق> تعرفه. <تصفيق> من باید تعرفی اون امضا می کردم. اونم تعرفی من. یعنی اگر تعرفی امضا نداشت، کاری انجام نشد. مردم که تو خورند نامی که فقط شیخ و فتی سواری چارچرخ میشن و راه میافتن کولاک ادامه داره شیخ دستر رو از فتی میگیره و هر دور رو خودش میچن آقا فتی آقا فتی نمیخوش رو بشه نمیخوش رو بشه نمیخوش رو بشه اونجره نگار کن و همانه همینجره بگن از اینجا جلوتر دگه نبشه نست باید فیاده بری با که راحت کنه چند تا بشه بعد از اونجا دیگه تا قربه را اینگیست آقا یاده میشن و فتی ساکشش رو, رو دوشش و شیخ ساکش رو شیخ علی محمد ساکشو دست میگیره قدم فتی کوتاه کوتاهن و با احتیاط فتی بچه همین طبیعته میدونه تو این برف چطور باید راه بره که نیفته اما شیخ علی محمد هر قدمی که برمیداره امکان نداره که رو برف په نشه که بلاخره هم تعادلش از دست میده و از بلندین قلط پایین شیخ چشم چشمش نمیبینه. فتی با اینکه کولاک دیگه داره کم کم چشمای اونم میبنده، یه نگاهی به اطرافش میندازه. یه قلبه کوچولو میبینه. شیخو که بیحال و بیهوش شده توی عباش گذاشته و رو برف میکشنش. شیخ پیر, پیر شده. هنوز بنیه فتی با این مرزی سختش بیشتر از شیخه اون بچه‌ای همینجاست. هر چند اگر 20 سال دور باشه. اصلینه که اهل همین هوا باشیم. ا این رحمت خدا رسوندهش برگشته داره اطراف رو خوب نگاه میکنه که شیخ و فتی رو پیدا کنه اما هیچ خبری نیست هیچی جز واگنهای مخروبه پیدا نیست رحمت فقط میدوه البته بلده چطور تو این برف و سرما راهشو پیدا کنه فطحی تو یکی از این واگنا نشسته که دیگه چیز زیادی از اون نمونده که تو برف ناپدید بشه ای رو پاره میکنه و دور دستش میپیچه كفن از تو در درمیاره میبوسه و اونو رو قلبش زیر لباساش میذاره و کتشو محکم میکشه تو سینشو میزنه بیرون هنوز برف کولاک میکنه از کنار خط آهن را میفته رسیده وسط خط آهن که کمرش خم میشه از مقاومت جلوی کولاک خود حد خودش رو به تونل برسونه یه قدم میره جلو و دو قدم کلاک برش میگردونه دولا دولا وارد تونل میشه برف و سرما روی پالتوش سفت و سخت نشسته و ریش و سبیلش یخ بسته. ولی این کاری که میکنه به دیواره تونل تکیه میده. باز رو میفته. بعد از چند قدم توی برف میشینه کنار گیاه های سحر. <تصفيق> انگار قوه و قدرتش از این موجودات بظاهر لاجون کمتر شد اونا هر طرفی که باد بیاد و برف ببار خم میشه. اما فتحی باید این راهو بره. چه کولاک موافق باشه و چه مخالف و سفیدی چشمشو بدجوری میزنه سعی میکنه بالای کوه ببینه پاهای قویش سخت جونی به خرج میدن و تاب میارن اما اون به اولین بوتهی که میرسه زیرش پناه میگیره و اینی یه بچه میشه تو بقل مادرش دیگه کارش به سینه خیز کشیده دستاشم به کمک پاهاش میان دستاشو زیر بقلش گرم میکنه و فقط راه میره اونم با چشم بسته مرد قدریه که با این مریزش وقتی پاهاش تا زانو تو برفو فرو میره دست بردار نیست انگار خیال داره تمام گناهاشو با این برفو مثل این برف پاک آ بالاخره کلبی چوبی پیدا شد انگار فرشته ای اونو وسط این حمی سفید ظاهر کرده آهی میکشه که بخار دهنش این دفعه دیگه واقعا پیر شدی مرد اما سر بلندی فتی هیچ وقتی اینقدر سرشو بالا نگرفته بود دیگه انگار دونه های برف چشاشو نمیزنن انگار برف تا حالا اینقدر موافق نبوده عبوهاشو بالا میدزه قدم به قدم به کلبه نزدیک و نزدیک در میشه کمی که راه میره میزده نفسش بالا نمیاد نه سختی از زرباهای تونتون از قسل از وجب به وجب کلبه رو میکنه سپیدی کلبه سپیدی <تصفيق> با قورت میده نگاش به زمین زیر پاشه و دیوارای کلبه دستشو میکشه رو دیوار پاهاش سنگین تر شدن حالان که برف نیست پاهاش پیش نمید دستشو بالا میبری بزن به دیگه تو هوا نگهش داری پشیمون میشه و دستشو پایین میار و فقط در رو نگاه میکنه ترجیح میده از کوچیک نگاهی به داخل بندازه خب از هم چیزی نهلا نیست. نراه پس داره و نراه پیش شروع میکنه دور خونه گشتن میگرده و میگرده دور تا دور میگرده و چشم از پنجره برمیده دست پارچه پیچشو میذاره رو دیوار و میبوسه و, می بوسه و هبه پیشونیشون میسکاره به سردی دیوار تکیه داده به دیوار و مثل برف فعلا فرو نشسته آرومه انگار این همه راه اومده تا اینجا فقط نفس تازه کنه و بره اما کجا؟ هوا تاریک و تاریک تر میشه و چراغ داخل خونه چشمک زدناش شروع شده فتی یه چشمش به ماه و یه چشمش به پنجره تو چشاش برفای تمام زندگیش دارن آب میشن تو این تاریکی و تو این دشت بی انتها فقط پنجره کل به پیداست و کفنی که ودهی دور خودش پیچیده چشاش دیگه تعمال نداره. بسته شده. تنش داره ریارس از لای پلکای به هم اومدش فقط رقص کوران تو دشت و کوه پیداست اونم به مدد ماه و پنجره انگار دشت با اون هم نواست. یک لحظه از لرز امون نداره. کنید و مثل همه شبای سرد خدا که بالاخره تموم میشن و قندیلا شروع میکنن به قیل وقال اینجا این نقطه از زمین و هم رنگ و میبینن و هیچ ابری نیست که خورشید و بگیره پرنده ها شروع کردن به سر و صدا و جشن شکر گرفتن از تیهی شب کولاک دیگه آسمون و زمین آروم گرفتن عین چراغ کلبه ساکت ساکت فقط در موقع باز شدن سمزمه میکنه خبری گوشایش اما دی؟ ندیدن صورت فتحی حواس نمیخونند ساکت ساکتند انگار از اول روی همین صورت نقاشی شدن اما نتونستن روی لبای اونو بگیرن چشاشو بستن اما دهنش هنوز بازه هرچند یخ زده فقط کفنش تو شب نور نداشت خورشید نور اونو بیشتر و بیشتر کرده طوری که زور برف بهش نمیرسه فتحی سفید پوش و آروم تو مسجد خوابید در آهنی و رنگ رفته مسجد به همون آرومی در کل به باز میشه اول پای اصها داخل میشه و بعد پاهای آشنا خست قدمایی رازی اما خسته و لاجون لرزون اما گرم و مطمئن زانوها به اجازه اصها کنار سینه فتی به زمین میرسن و انگشت رنگین رضایت به پاکی کفن پرخط فتی میشینه کنار بقی هیچ وقت اومدن ها و رفتن مثل هم نیستن هرچند شکل شمایلشون مون ازنه با شیخ علی محمدی که تو همین هوا و کنار همین ریل و همین موقع انتظار تکباگونو می که بیاد و ببرتش به مسجد روستا با این شیخ علی محمدی که دیگه امامشو رو نمیذاره رو ساکش و گوشش رو نمیچسبونه به خط آهن که نزدیک شدن واغان و تخمین بزنه به اندازه یه زندگی فرق داره به اندازه تمام روزا و تمام آدمهایی که دیده به اندازه همه یه بله و همه یه نگفتن رضایت گرفتن به اندازه همه فاتحه ها و انا لله و انا الی راجع. و این هم رادیو فیلم دیگه که تقدیمتون شد من ملیه شبانیان راوی و نویسنده این راژیو فیلم به همراه بزرگواران علی حاجی نوروزی صدا و فرشاد آزرنیا سردبیر و تهیه کننده سپاس گذاریم که در این مجال هم با ما همراه بودید تا حکایتی دیگر از همین مردمان ساده دل بدرو